بله الو؟ الو. سلام رامینجان. سلام ما مادر. حالتان چطور است؟ ما خوب هستیم. تو چطوری؟ بد نیستم. الان شما کجا هستید؟ ما در فرودگاه شیراز هستیم. کی به تهران میرسید رسید؟ فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسیم. من برای شما در هتل جا رزرو کردم. هتل آزادی نشانی هتل را می دانید ؟ بله، می دانیم. ما مستقیم به هتل آزادی میآیم. خوب است. من هم به هتل میآیم شما را آنجا می بینم. حتما پسرم خدا حافظ خدا حافظ